فصل هجده از اینجا به کجا خواهید رفت؟ به سمره تلاشهایتان چشم بدوزید آلیس واین فعال حقوق مدنی آبراهام لینکول می گفت اگر برای قطع کردن یک درخت شش ساعت وقت داشته باشد دو سوم آن یعنی چهار ساعت را صرف تیز کردن تبرش می کند در زندگیتان شما همان تبر هستید و برتری خفیف نحوه تیز کردن آن تبر است. باید از طریق آن اقدامات منظم ساده و پیش پا افتاده خودتان را قوی کنید و مسیرتان به سوی موفقیت را دنبال کنید. وقتی که آن اقدامات در طول زمان مراکب شوند، شما را به اوج موفقیت می رسانند. اگر شما این سه کار را انجام دهید، در این صورت خودتان را روی منهنی موفقیت می بینید و رؤیاهایتان هایتان را به واقعیت تبدیل می کنید. یک اقدام ساده روزانه را در هر یک از هفت حوزه مهم زندگیتان یعنی سلامتی، شادی، روابط، پیشرفت شخصی، امور مالی، حرفه و اثرگزاریتان روی دنیا انجام دهید که شما را در هر یک از این بخشها به سوی موفقیت پیش می برد. بررسی روزانه این اقدامات برتری خفیف را به عادت تبدیل کنید. مثلا با نوشتن آنها در یک دفتر سبت وقایع روزانه، همکاری با یک همراه برتری خفیف استفاده از یک مربی یا ابزارهای دیگر. زمان کافی و مفیدی را با افرادی سپری کنید که به اهداف و رؤیاهای مشابه شما دست دستیافتند. یا به عبارت دیگر از مربیان، استادان و دوستان موفقتان الگوبرداری کنید و این کار را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه انجام دهید حالا همه چیز را میدانید احتمالا متوجه شده اید که این فصل در مقایسه با سایر فصلهای کتاب کتاحتر است البته بسیار کوتاهتر. دلیل کوتاه بودن این فصل ساده است هیچ چیز دیگری نمانده که لازم باشد آن را بدانید شما به یک فصل طولانی دیگر نیازی ندارید حالا باید به سراغ زندگیتان بروید شما همه ی آنچه را برای دنبال کردن و تحقق بخشیدن به رؤیاهایتان لازم دارید میدانید شما میدانید چگونه پا در مسیر تسلط یافتن بر برتری خفیف بگذارید و زندگی در سمت موفقیت منحنی برتری خفیف را آغاز کنید. شما میدانید برای موفقیت باید چه کارهایی انجام دهید زیرا میدانید که افراد موفق چه کارهایی انجام میدهند افراد موفق کارهایی را انجام میدهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند آنها هر روز و هر لحظه کاری می کنند که برتری خفیف به نفعشان عمل کند نه علیهشان آنها اجازه نمی دهند که احساسات، خلق و خوی یا نگرش آنها را متزلزل کند آنها زندگیشان را با فلسفه هایشان اداره می کنند و هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به موفقیت انجام می دهند. خواه آن را دوست داشته باشند یا از آن خوششان نیاید افراد موفق به دنبال مسیرهای میانبر نیستند و به امید فرصت‌های بزرگ نمی‌نشینند. آنها همیشه برای جهش‌های کوانتومی آمادگی دارند و میدانند که چنین لحظاتی هر از چندگاهی خودشان را نشان می‌دهند، اما بر روی وظایف و اقدامات پیش رویشان تمرکز می‌کنند. آنها در مسیر مهارت یافتند و استادی قدم بر می دارند و وقتی که در آن مسیر گام نهادند، باقی زندگیشان را در آن مسیر باقی می‌مانند. افراد موفق هرگز شرایط یا افراد دیگر را سرزنش نمی کنند و در عوض مسئولیت کامل زندگیشان را بر عهده می گیرند. آنها از گذشته درس می گیرند اما در آن متوقف نمیشوند بلکه سعی می کنند خودشان را بالا بکشند و با نیروی آینده پیش روند. آنها میدانند مسیری که به منحنی موفقیت منتهی می شود و مسیری که به منحنی شکست می انجامد تنها با خطی به باریکی یک تار مو از هم جدا شدند با اقدامات ساده و ناچیزی که انجام ندادنشان درست به اندازه انجام دادنشان آسان است افراد موفق میدانند که چگونه از تنش طبیعی ناشی از فاصله بین نقطه الف، یعنی جایی که هستند و نقطه ب یعنی جایی که می باشند استفاده کنند تا این فاصله را از بین ببرند. آنها درک می کنند که چرا لاک پشت خرگوش را شکست داد و چرا یکی از گرباقه زنده ماند و دیگری مرد. آنها میدانند آنکه پیوسته می, دانند آن که پیوست می رود در مسابقه برنده می شود و برتری خفیف نرخ رشد بهینه آنهاست. افراد موفق اقدامات روزانهای را انجام می‌دهند که مطمئن هستند آنها را به مقصد نهاییشان می‌رساند. آنها در طی مدت زمانی طولانی به طور مداوم با نگرشی خوب و مثبت و اشتیاقی سوزان که با ایمان پشتیبانی می‌شود، ظاهر می‌شوند. آنها حاضر به پرداخت بهای موفقیت و انجام دادن کامل و اصول برتری خفیف هستند. افراد موفق بر دیدگاه مثبت تمرکز می‌کنند. آنها درک می‌کنند که ناکامی و شکست برای هر کسی اتفاق می‌افتد و زمانی که این اتفاق برای آنها رخ می‌دهد آن را می‌پذیرند زیرا می‌دانند که آنها را پالایش می‌کند و درک آنها را از زندگی عمیق‌تر می‌کند آنها گام به گام از ناکامی خارج می‌شوند و به مسیر مثبت برمیگردند. افراد موفق از اینرسی برای ایجاد تکانش استفاده می کنند تا سفرشان به سوی اوج موفقیت را آسان و آسانتر کنند. آنها میدانند چگونه عادت را که به کارشان نمیآیند شناسایی کنند و عادتهایی را جایگزینشان کنند که برایشان سودمندند. آنها نیروهای بازتابش، تکمیل و تجلیل را میشناسند و به صورت مکرر از قدرت آنها استفاده می کنند تا کارهای ناتمامشان را به اتمام برسانند. و به جای اینکه به عقب و پایین کشیده شوند خودشان را به جلو سوق دهند. افراد موفق سنو دانش مورد نیاز برای موفقیت را کسب می کنند. آنها یک سیستم یادگیری مداوم از هر دو نوع یادگیری کتابی و میدانی ایجاد می کنند از طریق مطالعه و انجام دادن یاد میگیرند و با پیدا کردن مربی و الگوبرداری از رفتار موفقیت آمیز آنها به آن دانش شتاب می بخشند. افراد موفق همیشه از خودشان میپرسند با چه کسانی وقت میگذرانم؟ آیا آنها افرادی که بهترین مظهر جایی هستند که می خواهم به آنجا برسم؟ آنها روابط قدرتمندی را با افراد مثبت ایجاد می کنند، با دقت گروه های همکاران تشکیل می دهند و به طور منظم با آن گروه ها همکاری می کنند و در صورت لزوم برای جدایی و قطع رابطه با افرادی که مدام منفی بافی می کنند و آنها را پایین میکشند تردید و تعمل نمی کنند. افراد موفق روزانه حداقل ده صفحه از یک کتاب قدرتمند و متحول کننده زندگی را مطالعه می کنند یا حداقل پانزده دقیقه به یک فایل صوتی آموزشی و الهام بخش گوش می‌سپارند. افراد موفق ابتدا روی فلسفه‌شان کار می‌کنند زیرا می دانند که منبع نگرش‌ها، اقدامات، نتایج و کیفیت زندگی آنها همین فلسفه‌شان است. آنها میدانند که با دو برابر کردن نرخ شکست هایشان احتمال موفقیتشان را افزایش میدهند. آنها فعال بودن را درک می کنند و از آنجا که کارهای لازم برای موفقیتشان را انجام میدهند، قدرت انجام دادنشان را نیز به دست میآورند. آنها قدرت اقدامات ساده را درک می کنند. آنها قدرت اقدامات منظم روزانه را درک می کنند. آنها قدرت سنبل آبی را درک می کنند و میدانند که چگونه از آن استفاده کنند. آنها میدانند که چگونه وقتی سایرین تسلیم و غرق می شوند به دست پا زدن ادامه دهند. آنها پی بردند که در برابر انتخاب های پیش رویشان باید خردمندانه عمل کنند. افراد موفق برتری خفیف را درک می کنند و آن را به نفع خودشان به کار می گیرند. بنابراین، از اینجا به کجا خواهید رفت؟ سکه یک سنتی خودتان را پیدا کنید و سپس شروع به دو برابر کردن آن کنید. دعوت شخصی شما باید مظهر تغییری باشید که می در جهان ببینید. گاندی بسیار خوب. به پایان راه رسیدیم. تبریک میگویم که کتاب را به اتمام رساندید. مگر اینکه شما هم در حال انجام دادن کاری باشید که بسیاری از مردم انجام میدهند و حتی پیش از اینکه تصمیم به خرید کتاب بگیرند چند دقیقه پایانی کتاب را سریع گوش میدهند تا ببینند که کتاب چگونه به پایان میرسد. به هر حال این موضوع سؤال خوبی را پیش میکشد. این کتاب چگونه به پایان میرسد؟ این یک کتاب رمان نیست که نویسنده در ده صفحه پایانی یک پایان رضایت بخش و مطلوب را برای شما فراهم کند. این کتاب درباره زندگی واقعی است و پایان آن هنوز نوشته نشده است. تنها کسی که می تواند پایان آن را بنویسد شما هستید. بنابراین اجازه دهید از شما بپرسم این کتاب چگونه به پایان می رسد؟ این کتاب می تواند این گونه به پایان برسد. و سپس کتاب را می‌بندی چندین بار سرت را به نشانه موافقت با مطالب آن می می‌دهی و با خودت می‌گویی کتاب خوب و مفیدی بود باید مطالبش را به یاد داشته باشم و کتاب را در قفسه کتابخانه می‌گذاری جایی که کم کم به فراموشی سپرده می‌شود سپس به سراغ ادامه زندگیت می روی، درست همان گونه که در روز قبل و روزهای پیش از آن بود برتری خفیف می تواند درست در همین نقطه و همین لحظه برای شما به پایان برسد یا می توانید همانند جمله جاودانه استفان کاوی که میگوید کار را با در نظر گرفتن پایان آن شروع کنید تصمیم بگیرید که از همین امروز پا در مسیری بگذارید که زندگیتان را برای همیشه تغییر خواهد داد می توانید این کتاب را کنار بگذارید و آن را فراموش کنید یا اینکه بخشی از یک جنبش شوید یک جنبش از کارهایی که انجام دادنشان آسان و انجام ندادنشان نیز آسان است، اما تأثیرات مهمی در دنیای شما میگذارند. در این کتاب درباره اثر موجی صحبت کردیم که به معنی تأثیرات بلند مدتی است که تصمیمات و اقدامات روزمره شما در دیگران میگذارند. همچنین هفت جنبه مهم زندگی یعنی سلامتی، شادی، روابط، پیشرفت شخصی، امور مالی، حرفه و اثر شما روی دنیا را بررسی کردیم تا ببینیم برتری خفیف در کجا می تواند تفاوتی شگرف و محوری به وجود آورد. مهمترین و بزرگترین جنبه زندگیتان اثرگذاری شما روی دنیاست. تفاوتی که شما در دنیای پیرامونتان ایجاد می کنید. همان اثر پروانه شخصی شما از بسیاری جهات اثر موجی جایی است که برتری خفیف بیشترین اهمیت را داراست. اثر موجی نه تنها بر دنیای پیرامونتان اثر میگذارد بلکه در خود شما نیز تأثیر شگرفی دارد. این چیزی است که قبلا به آن اشاره نکرده بودم. وقتی که از اثر موجی خودتان آگاه شوید و شروع کنید به دیدن، شنیدن و احساس کردن تأثیرات مثبت و متحول ای که در میان گذاشتن تجربه های برتری خفیفتان با دیگران دارد در میان گذاشتن تجربیات بر خودتان نیز اثری متحول کننده خواهد داشت در حقیقت، زندگی شما هرگز مانند قبل نخواهد